رادیو فیلم جیرجیرکدار نویسنده و کارگردان شاپور غریب تهیه کننده مؤسسه سینمایی برگ سبز اصفهان بازیگران اکبر ابدی او غیررتش قبول نمین جلو این همار رو میره یاریوش صد زاده. وقتی اندازه پک شد سرد قیمتش چونه میزنی. حامد زیدی خو هزار جفت کفش جیجی بخره. کبررا فروخی. آخ من دلم خود خودمون تلویزیون رنگ داشته باشیم. اکسای زیبا از پل خاجو، مسجد امام، هتل آلیقاپو، منار جنبان، سیوس پل، زاینده رود، پرشای قلمکاری و شبهای زیبای شهر اصفهان، کارگاه های قلمزنی، بازار، کارگاه های و بالاخره صبح اول وقت و در دولنگی چوبی قدیمی خونهی که باز میشه و یه پسر بچه چارده ساله سال از در میاد بیرون و در رو میبنده یه کیف دستشه کیف میزاره میذاره زمین میشینه و به یه در تکی میده و پاشنه یه راسته راست رو مرتب میکنه در حیات از اون باز میشه یه خانم جوان که چادر نمازش دور کمرشه گشته دره که پسر بهش تکیه دادی بود باز میشه و پسر از پشت افتاد توی حیوان خوب شد که بودتی چه بودم چه میدونستم که در تکیه دادی آله بودم میگی نه میخواستم بگم وقتی از مدرسه ما رو شد یه دونه بستنی. نون بستونه نون سنگک که نخونه یه خاشخاش میگی بدونه خاشخاش از گلت پایین نمیره سنگه پایین رو چه بسه به نون سنگه بادر دارو میبنده پسر رو میاد <متلاح> تو کوچه با لگت قلب سنگ و عجل و پاش پرت میکن دمه در یه خونه ای نیسته دوباره دستشو میبره طرف پاشنه کفشش برای حیات باز میشه سلام هم کلاسشو سلام برای حاضر این کلوشه یاد رفت شیر دمو بندو خب شو گلو هم حالا این نداره یه <تصفح> دور که روش بخونم فوتی آب میشم همین آتو با کل کله گچه نه که کله خود مهده نیست ای دیوسه سپیل پای در بند ای گمه باید ای دمو بذار تو کوچه کتاب فارسی دست داشت ای بالاگر دوباره قلوه سنگ سر راهشو پرد میکنه سنگ نخوره به در خونه دربند. یه در باز میکنید ای دم ای دیو سپید پای درزم که مردم آزاری پسر به کسی زبانه مشکی که سر کسی فلزی هست با لگت رو پرس میکنی. اینجا یه زمین خاکیه که ده پونزده پسر بچه‌ی نوجوون دارن فوتبال بازی میکنن با همون قوطی فلزی پسری داره سوت میزنه سوت دارم یه نه مگه اگه پشت دارم چشم داره درکه افزاید گرفتم این همه زور بزن گول بزن آخرم آقا میگه افزای اعتراضه بیخوی نکنی یا کارتی قمید نشه میدم و بردم و اون کارتا اگه تو بهتره بردیسی بزنی به بفهم و به نزگیل یادانه سوت رو میدازی گردن پسر تیم مقابه پسر که داوری سوت رو پست میکنه رو میره. رو میره بچه ر چند تا از بچه رفتن دست داور رو که به نظر اسمش علی میاد گرفتن و برگردوندنش تو زمین یکی سوت بهش میده سوت میزنه بازی شروع میشه دوباره با همون پسر تیم مقابل درگیر میشن این پسر همونی که صبح تو کوچه از علی پرسید چهر دماوند و حفظ کردی یا نه فقط بعدی هم فقط برای بگیری، از رمه ده جوابش همینه. ها؟ کو، ای جدا. گذشت. بازی دوباره شروع میشه. یکی از ها به علی تانی میزونه. اون میوفته. میشه چا کیفاشونو برمی‌دارن و میرن طرف مدرسه فقط علی مونده که با لگت قوطی فلزی رو به اون دور دورا پرت می‌کنه لنگه سمت راست رو از پش در میاره کفشش ناراحته <تصفيق> علی زیر نیمکت ردیف آخر کلاس داره یه نخو می‌بندی به دور لنگه کفشش وارجی دستش می‌خوری به پای همکلاسی‌ش که روی کرده. همون نیمکته. این همکلاسی همون پسر راه همسایه. حالا برای اینکه بچه‌ها درست یادشون بگه و تو خاطرشون حک بشه دوباره بخون. در بنده ام قسط بخون بابا جون. ای بابا مجسی. دیگه بقیه این دستم داره این کف دیگه فایده نداره. ببین 160 ها. دیگه فا این کفشو حالا حالا همیشه گلزه. ما افتاد. بفرمین یه دانش آموز چاق و کپل وارد کلاس این چه وقت مدرسه اومدن پسر جون به خدا همه رو مثل با دویدی بفرم میره به طرف انتهای کلاس ایمان این صدای کفشای اونه همه دانش آموزا با تعجب به پا و کفشای اون ظلم میزنن یه جو کفش ورنی زرشگی بیر کسی کنار همون نیمکت ردیف آخر میشینه سرجاش کیف بزرگی رو میذاره روی نیمکت تو آششم بچارن همینا ای تو وز هیچ کار میکنی؟ میگه نمینی کار دارم یعنی اینقدر بلندی اینقدر پای لاک سرت جابونه ما تو چه تو کیتای از کلاس پیرمه میکنه خواستم میبینم زیر زیر کاش گذار تا اب تموم شد آقای معمار زاده؟ علی از دیر نیمکت سرشو میبره نزدیک پای همکلاسیش بخوا دیدی یه دوشو پای میکنم نیندرشو دار رکی زده بکرلت علی پاشو میکنه تو کفشه همکلاسیش یه دیر بکی قوشت درشت زگاهی چه سدنی میجه بخوا خواهیست قدر قبلی بچه درش بیت سطحی را دیگر زمان رفتی میگم بلکه دو تایی دو بده اون یکیشم در بیر رو رو اون یکی لنگه کفششم میپوشه. اینجا کنیم که رو رفت معلوم هستون زیرداری چی کار میکنی؟ آقا این نویزه ما صرف هم میشینیم آقا دروق میگه خودش کفشه امار پاش کرده و نویزه ما درس رو گوش بدیم از امروز باید 20 بار جریمه بنویسین تا درست درس رو بفرمین بفرمین بیرون آقا ما هم بنویسین بله شما باید بنویسین بفرمین بیرون بفرمین بیرون پسر بشو از کلاس میرن بیرون بچو از مدرسه تهتیج شدن آریم با دو تا همکلاسی‌هاش تمام حرفش. کفش اگه بود چی؟ اگه بود از دن کفش چه اما اگه نبود؟ تو کول میده. پس من چی؟ تو بچو آقا این ماشین پژو نگه پسر با کفشای جیرجیردارش سوار ماشین میشه. <سؤال> همون بهتر کرد اگه میباختی نمیتونه سیه قدم هم بهش کلی بدی اگه بینیدن که توی خیلی میگه که باش شرط میبستن علیو همکنسیش میاندنه میترینه یه مرزی کفش فروشی مردانه به کفشو نگاه میکنن بکتر باشم یه میری دکی این چه از درمش علی چیه نگفتم خالی بنده باید که کفشه قیمتشو تو گذاشته باشه با کفشه ما شهی روزه ما این تو که ما میکشه تو این همه رو اومدیم برو تو ما نمیخواییم به چه فراده بگیریم از خیلش باداشم حالا به بسرم میبارم یه دیگه گفته باشه آسانی که بزمیم نیمیام دمه در مغازی که بازم هست دوست علی اونو هول میده طرف داخل علی سلام. علیه که سلام پسرم چی میخواستی؟ خواستم بپرسم کفش داری؟ چجوری چی میخوا؟ نگه کفش به سمیه ما کسی زیر میکنه آها, آها. نوره پا چند عزیزم پار ساسی یا بود ولی امسلا نمیدون خب پسرم چلی با بزرگترت نایمدی؟ من کفر خودم میخوام نه بزرگترم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <تصفيق> خدا کنه که قاعده پاد باشه. خو قیمتش سنده پسرم اول پاد بکن بعد وقتی اندازه پاد شد سر قیمتش چونه میزنی عروسه عروس یه کفش اینه کفشای همکلاسیش فرهاد برای علی میاره علی به دوستش که بیرون داره سرک میکشه چشمت میزنه. علی داره رو می میپوشه اگه سیداشو دوست داری را برو علی میره روبروی آینه میسته می با انگشت میکوبه به دیوار میره تو فکر انگار داره میکوبه به در کلاس مدرسه بفرقه. سلام این چه وقت مدرسه آماره نفسره جم آقا به همونزم تقصیر ما نبود تقصیر ما باید. تو باید رو باشم تنم رو, رو اینو باید خیلی خوب پسر میره به طرف انتهای کلاس همه ای بچه ها به کفشش نگاه میکنن همین جوری داره میره و میره که <تصفيق> سرش میخونه به قفصهای مغازه کفش فروشی و جمعه کفش رو میدازه زمین حایی <تصفيق> به خدا نفهمید تر اینجوری شد <تصفيق> ایراده نداره ما یه از چند بار دولار ها شدنه بس خواهی جمع کردنی جمعه ها و کفش ها میشن چه خرشان سمساره اگه من بودم با اردنگی میداخدن شد خوش خدمتی ها اینکه اینه ک ک مشتریشه اگه به که پول ت جوش نیست رو قبلش میکنه. کنه پیر مرد مغازه دار میشیه و با دست پنجاهه کفشو فشار میده پنجاز که نمی زنه اگه هم بزنه به رو <تصفيق> خب از پس پسندی دیار مبارکت باشه حالا کفشا در یه بذارم تو جهبه و سم آخو شما کن و قیمت چه ما نگفتیم مصمئن باش بیشتر از پسر میمار نمیگیرم چقدرش گرفتیم هیجده هزار تون علی کفششو از پاش در میاره و میده به مقاز دار گپور را گفته میده را ببینم خو. حالا پولاتو بریزی اینجا ببینم چقدر کم و داری همه چی؟ همه بچه جون یه ساعت من سرکار گذاشته حالا میگی همه شو حضیر من فقط مدابیم به امیتی شب پرسم اگه پول داشتم از نمیزه جون میخریدم بسرم فکر میکنی چه پول دار بشی؟ هیچ بابا چی است ؟ هست؟ سهر میزنه جلادی سهر مونیه یه دکنه داره پیرمرد با بوس آب دهانشو گرد میده و در جبه کفشو میبنده دیگه یه روزی بری به تخت خورد و تو بندار شدی کفش ها منتظره تن قول خدا بزن تو حیات مشغول کاره علی که یه لنگ کفش تو دست چپشه و کیفشم تو دست راستشه کنار ستون در به دیوار تکیه میده قسمتی رویی و زیری جلوی کفش کاملا از هم باز شده علی با لبخند به بزن نگاه میکنه سلام! علی از جیب شلوارش آدم سیبه دفتر بچه میده نصد که حیات این خونه بزرگ که اتاقای زیادی هم داره حوزه نسبت بزرگی هست چند تا بچه تو حیات مشغول بازی سلام سلام پس کولونه آخه اینجوری که نمیشه تو خونه بی ای ای ای مگه همین دیروز ندادم اون سارید پینه دور باز تو اینو پاره کردی تقصیر من چیه فقط نخوای زپرتیا اگه شما یه تو کفش حساب ما دم به دم نمیشو آخه من با چه روی از بابای تو پول بخوام وقتی کاسه ساده ماش همش هیچ 18000 تومان چی هیچده ازار تومن؟ علی به این وقت روز قسم یقم رو از دستت پاره میکنم آق حتی رو مانی فرح های میکنه؟ خیر خیره سر اونا پوستشون پوله هیچده ازار تومن براشون باد هواس خب قصی خرید زبون نفهم. میگم نره میگی بدوش قصی نباید پول داد حتما باید به کتک حسابت رسید اصلا من چرا دارم زبون بریزم میرم الان بابا صدا میکنم خودش اپاست بری مادر علی چادرش رو سرش میکشه و میره علی برای پرندی که قفص آویزی دست نمیدر سوچ میزن با با مدر علی علی رو دنبال میکنه و علی به سرعت فرار میکنه علی از نردبانی چوبی بالا میره که بره پشت بام پدر علی از پایین پایی نردبانو میگیره و سر نردبانو که به دیوار تکیه داده شده بود با دیوار فاصله میده علی به کنه آخر رسیده کبوتر روی بامو رو میبینه احالی خونه توی حیات جمع شده خدا مرگم بده نکنه بچه بیفته چه نزده میده یا سروابی که قیمت یا نگیری؟ باش حرف زدن आवाजش پرت میشه. میگه خودت نگفتی باید تربیت بشه. گفتم اما نه اینجوری که همون دقمت کنی هم منو. تا نگه قلب کردم اس پاینو بدن خبری نیست. مادر یک کلمه بگو غلط کردم منو از این دلها رو عذاب نجات بده. خودت رفتی و کشش خوندی این آشعلان پختی. ببین چه سفیدی پر رو را. تا نگ دیگه حرفی کفشاره نمیزنم باید همون بالا بمونه. خب حرف زور میزنی او غیرتش قبول نمید جلو این همه آدمی رو بگر تو که بچه نداری بدونی چه خرد جای داره این پولی که هنوز خرج نکردیش که اینقدر مایه همه داری مایه و بعضم اینه وای به وقتی که مایه نعیزارم مد از خر شیطون بیا پایین. بابا نخواستم نظر از حرفی که زدم مثل سکرشیمون بشم نردبان از دست پدر به طرف دیوار کشیده میشه. علی لولی فلزی لبه پشت بامو می گیره. ای وای علی پادر هوا مونده امام می میکن. علی به سختی خودشون میکشونه پشت بام پدر علی پشیمان نردبانو و چسپونه سر جاش و سرشو به اون تکیه میده علی دراز به دراز میفته روی پشت بام به پرواز کبوتر رو توی آسمون خیره شده یکی از کبوترها فضلهای رو میندازه تو صورت علی ای وای علی با پشت دستشونو رو پاک میکنه جقهتی بود هرچی کف دربی به حرفای زن توجه میکنه و با خوشحالی حرکت میکنه و میره علی نشسته توی اتاق داره نونی رو که توی شیر تلید شده میخوره یه بچی نوزاد کمی دورتر از علی کف اتاقه حالا علی پاهاشو و دراز کرده بچه رو گذاشته رو پاهاشو میخواد اونو بخوابونه علی بچه رو بقل کرده و داره را میبره علی علیهم داره گریه میکنه علیه خوشحال توی کوچه یه اسکناسو که توی دستشو تو هوا میچرخونه و میره اسکناسو میبوسه و میذاره تو جیب شلوارش از کناری یه ماشین میگذره از کنار یه ماشین میگذره یه توپ میاد از جلوش رد میشه کمی دورتر میفته زمین کجایی؟ یه ساعت درخمان داشتیم سود میذاریم اسکزره سیده به خاطر ما سبقه که داریو خریدیم میری وزی خیلی دلم اما هر کی کفش ندارم. خب پاوررنه بازی کن. تخت یه کفشم درمت. قیامت پاشو. واو اینکه کف به بر ور مگه حالا حسی برای صرفهات میاد. وقتی بعد بیار باشه، درد دیوار براش میواره. خیلی بد شد. اگه نمیمادی بازی، بردمو حتیم میتونی. گفتم که نمیتونم. حالا که نمیتونی بازی کنی، بیا سوت بزن. میترسم سوت زدنم بعضی‌ها رو کنه. هر خلاص سوت زدن کردم، خودم واسه خودم سوت نزدم. علی میره تو بر می‌داره و به طرفشون پارس می‌کنه. علی اومده کنار بسات باستانی فروش. کاتینه که این بچه آره. زامیشه. آره. چشین رو دفتر دیم شدی؟ به جون علی اگه باخته باشم ما زام تا دمه خوناتون کولت کنه من واختم. به پدرت ننی میدم. حالا سن نمیخوری؟ یه دستاد رواص. چله؟ بخیر شما اف کن نمیخوری. اصلاً رحم جای مومن نیست. خوب گفتی. من این حرفا به پدرم نيشت. پدرم میميش دو خرد. چی گفتی؟ رفيقه، تو خود. مفته چی نيست؟ پول ميدم. روات تیم. جای مادریه. مثلا یکی که تو بگی من چای پول یکی حالا دیگه پنجا تومن خوبه هر که پنجا نیست از دم که بیست تومن نیمی شما درسم هر جفتش پس دن بکی خودم ایکی با نمیشه. پولی ناکه من بیست از روی شهر بیست از روی حساب حساب پنشی باشه ش توی حیات خونه علی اینا سکوت برقرانه همه همسایه ها خوابن علی توی اتاق بیداره و روی میز کچولوی دفتر و کتاب پهم کرده و داره جریمه های فرهاد معما رو براش بینیمیسه چهره اون خسته است. از شدت خواب چشماش بسته و سرش یه میشه مادر علی از خواب بیدار میشه و علی نگاه بکنه عذاب میدی؟ چشمای علی باز میشه بلنشو مثل بچه آدم سر جاد بخواب. چی خوابه؟ حساب کنم چند یاد بنویسم خب تو جات هم میتونی فکر کنی پس این زرمه های بنویسه؟ مگه فردار ازت گرفتن؟ فردان باز زریمه هست مادر میخوابه علی به ساعت نگاه میکنه دوزده و نیم شبه به صفحاتی کتاب یه نگاهی میندازه از جاش بلند میشه با مشت میتو به رو پاش. یواش یواش میره طرف یخچالی گوشی اتاق مادر چشماشو باز میکنه و سر میکشی طرف علی علی آب میخوره علی پاچه آبو میذاری سر جاش توی یخچال بیا بگی کبتو بذار رختو آزنم از درمای خودم رسیده این چه مرزیه به جونت افتاده است میترسم از پا یا؟ نه ترس از هفتم بیشتر از اون دارم نه به اینکه لای کتاب رو نمی کردی نه به اینکه که مثل کنه چسبیدی بهش حالا اینقدر قرب بزن تا رو بیدار کنی الانشم بیدارم ساعت پنج دقیقه به سه صبح علی به ساعت نگاه میکنه و خمیازه میکشه از با بوشت میکوبه روی میز کوتاه جلو دستش ساعت چهار شد علی سرشو رو دزشته دونه و رو در کتابا خوابش برده مادرش بیدار رو برده بیا بگی بخواب. تو نه نه. علی هم چشمش باز میکنه الان توی حیات علی سرشو رو گرفته زیر شیر آب شیر آب رو میبنده داره حساب کتاب میکنه علی بلند میشه میری توی اتاق 100 تو <تصفيق> به صدای جیرتیرک توجه میکنه <تصفيق> لبخند میزنه برمیگرده طرف صدا حرکت میکنه پاشو آروم آروم بلند میکنه و میذاری کف حیات مادر علی از خواب بیدار شده از پشت پنجره بعدی نگاه میکنه بخوابی میخوام بخوام همون که افشانی میذاره تو که پا بره وقتی خیلی همش اون وقت میبینی صدا روز شدیم اینجا کلاس درسی علی خمیازی میکشی فرهاد بیا. از این پاشو میذاری رو پای علیو فشار میدیم موالی من غلط اگه از دوردن دوردن شما به در خانه بخشم راست بستنیم رو کردی و بسیع مرد بلند حقی به زونتا دنازم تا خود صبح بیداری کشید. در... نگاه تو این خموم خواهر فرهاد دعوت داشتی دلت خوشه تا خود صبح پوز در... کرده و داشتم دشتم زریم هایی در... چشم ها کم که یعنی نگو زریم های خودم نمیشه همی را که به کمر بسته بود محکم کرد حسر جون، وقتی خمیازه میکشید جلوی دهنتو بگیر تا زنگوله حلقت پیدا نشه. دا نبسید. زیر لب دعای خانق معلم و همه بچه های کلاس شروع میکنه به خمیزه کشیدن زیر الله سعالی خان تیتی بو هیچی هیچی یکی دو دکیش دهنی می نزم بابا چون نه شکولات بود رایش کن بیا به جون علی آخریش بود در رای تمامونده شکولده خونه چونه نه بابا از مشکلی بخریدم دام... مدانی بد جنیا مشکلی؟ بگه هشت داد میفروشه دو یک باز شکلات هشت داد ها مشکلی میدیگه <تصفيق> علی پوست شکلات رو دستش گرفته و رفتی تو فکر <تصفيق> علی اومده دم به فروشگاه شکلات فروشی حدی سلام شکلات صافی نه یا موشه کیا بله دونه ای صنده. دونه ای نیست بسته ایه بسته ای صنده بسته ای شیست به همون قیمت مشکره میدهیم مشکریم کیه؟ فراشم عرصمیم من میخوام از اون ارزون تا برفشم دیم تقفیف به شاید اینکه که تو هم ارزون برفشیم نه آزی به تو سهبه در روش بزرش تو پاکه هم تو جهر باشی چه ای بیداره؟ میخوام تو رو باش اش علی توی خالی شکولاتایی روی پا حالا با شمارش اونا رو دوباره میندازه تو پاکت علی اومده مغازه کفش فروشی و روبروی پیرمرد مرد نشسته پیر می کفشه؟ خیال کردی با این کماتی کوتاش هیجه زارتا ما پس این پاکت چیه؟ کاسف شدم چی؟ شکلات تو ده همه آب میشه یکی چند میبوشی؟ برایش ما مفتکی نه شور کاسب بود مشتش بسته باشه نه خودی بشتازه نه غریبه شما نه خودی هستید نه غریبه برداره کنید مرد یه دونه شکلات برمیداره حالی یکی چند هست فراش مرستمون حتی دلش به میفشه. اما من خدا بکید نشست توم هم که ده تونش سویده. پسرم انصاف خدا به کسب برکت میده بگو اینشالله اینشالله خاضی قول میدم تا ماه نرسیده صایبی کفشه بشم اینشالله فرهاد معماری که دم در خونه عری ایستده علی سخط اینقدر داد میزنی کجایی از باز دادم گلون پاره شد این چیه شکلات از فردا میخواهم دکنه کریمات اخت کنم این سان کیک چاک کیکه چک خوردنیه ببین ولی پاکتو میذاره دو سک کن در جبه کیکو باز می کنی چه بسی خواهد کپوله مالی پای سفره عقد خواهرمه آنقدر یه طبق سفارش داریم ولی یه حبه درسته یه رو از روی کیک برمیتاری که بخواهد میشه خواهدش بسیطه ببوردمش درست در نکنیم علی جبه و پاکت و کیفشو برمیداری که بری تو حیاط پس چرا نخوردیش باشه شب وقتی با با اینه اومدم پا مونم خب کاری نداری خب خلافه ای کجا پس جریمایی من چی شو حرفشو نازم دیشب مورم آزندش هم پتن بشون کنم زختیش همون دیشب بود شرط میاندن دیگه رو حد بنویسی قباره ما دارم کنم که جمع به ساعت سا بوله هم کنه به هم نقم میزنه دیگه داری برحانه میاری اتباه ما نهی اما راستش نیمیارزه برای بیست تومان این قید زون بکنه از در که سی تومان به شرط که نقد باشه نصف علا نصفم وقت تحویی نه همه الان بیر چه سای از باق بیام ای بر جیمز فرحان در کیفشو باز میکنه کیف پولش رو در میاره دوختر بچه از حیات میاد دمیدر قدیل نگاه بکنه علی حبی انگرو میزر دهانه دوختر بچه دوختر بچه با ولا اونو میخوره. حسش گشنم بود قردش دادم اه حسرم قردش دادیم این پول نم کتاب چه من کلی کارم خدافز مادر علی زن بید به دست میری دم خونه سلام سلام سلام نه چی چیه؟ باز چه کلکی سوار کردی؟ این پاکت چکلاته خواهشون کاسه بکنم یه تو شیر نی... کپولم فرهاده برده چطور شده ها؟ تم بخشی بعد آخی باید باید نمیسه. باز میخوایی مثل دیشبز آبرام کنی؟ تا تو به این کفشت برسی یا من سر به صحرا گذاشتم شب شدی. همه همسایه ها توی حیات به طرف یکی از اتاقا میرن علی و مادرش توی اتاق خودشونن علی مشغولی جریمه نوشتنه مادر میشینه کنار علی علی بشقاب کیکو میده به مادرش دهن نوشته آبی میشه. حالا چرا با نوم نخوری؟ از اخواشم از زیست لرنی میشه درمیشه مادر میشه میره طرف سماوه رو پوده بخوب این پوده از سمیران بونم مادر برای علی چایی میذاری علی با انگوشت شست و اشاره دروازی درست میکنه و حبه یه خندو به طرف دروازی شوت میکنه خوشمزه هست نه؟ واسه بابا هم بذار نیر خیلی وقت اومده است <تصفيق> پس کزاست؟ از همون وسط حیات راش رو کچ کرد رفت اتاق مشکری پس بابا هم زر شد چی کار کنه بنده خدا بذاره بره یکم دلش باشه اگه این زوره پس شما نمیری بیری؟ آخ من دلم خودمون تلویزیون رنگی داشته باشیم آرزی سیاه زربیش مونده درست میشه مادر بذار باباید یه دکون بالای شهر بگیره اینشالله ما از این خیرنسی پیرنسی راحت میشیم همه اینا ها حاله که زن یه معمار نشد <تصفح> <تصفح> چی؟ اگه باباید من همسته باباید فهد معمار بود بذاری گوز کردن، زنی منوشتم هم زاشتن نکش دیوار تلویزیونی گام کردم خب مگه بابا چشه؟ همه از خوبه است. بالا میشی میرسه خب سرنک نشد کاسری میره بالای شهر ورزمون هم وضعمون خوب میشه نگا خام یوزا نکشیدم خوابم گرفت چایی تو بخور من بقولت بزنم یادم نیست فرمان دادا آره مو که راستین اینجا زمین ورزش مدرسه است و چه مشغول بازی فوتباله؟ مشکریم فراش مدرسی داره پیست شکلاته رو از کاف حیات جمع میکنه بچه از پلا دارن میان پایین یه ای دانش آموز به نرده تکیه دادی. کتاب میخونه مشکری میده طرفش بابام در اومد دارم بیچاره میشم خانه خراب شدم رفت چی داره با من؟ یه چی کاری میکنه؟ شیر پاشتو گذاشتو دم به من شکلات میخواستم تموم کرم فرده بیا شانسو یه بارم تو میخواستو نافریزی کنیم تموم ترم ایشالا فردا. مش کریم مش کریم ها ست شکلات بریم میشه سی ست توم هم نگه عرفو کی گفت عرفو شده؟ چی میدونم این گفت شست توم شیده غلط ترده هم که میدونه این چطور زده خودم افتاد من بی من بی من کالکیچی ماشی کولت میخوایی؟ بی من ماشکری می آیش یا وش می تونی پسر بچی میاد تحوشی در شکلات بخوری. شی چی در دهانتم میشم به شکلات داری میخوایی؟ شکلات چیه نفاس که؟ بی من دهانت با خوبیه. بی من حالم با امپوت مرچای کلاس مشکلیم جا رو به دست به یه پسر بچه دیگه نزدیک میشه ایشگوره ایشگوره تو از کی خریدی؟ از خودت گرفتم مشکل از من؟ کی خریدی؟ دیروز ها دیروز؟ دیروز تا را چنه نخوردیش پس؟ ایوی دادر الانی اخوه اخوه ایوی دادر باید تو بچه خوبیش بگی کسیم نکنیم خسته شده از بچه است ما شاکم می. چی داری تو دهنت می‌جوی؟ ما اون سگ. ما چرا اگه آدم چه این شکلات مس مس می‌کنی می‌خوری؟ جورو باهم که دل عطا آب شه. آ. خوبه مگه تو. از با سیمات بیرون با فرهاد می‌شینن نوی جدول. الی داری جوروش رو می‌کشه. سلام. سلام همسایه. خسته باشه بازی کرده. مگم که بگوشت خورده چی؟ ای که دارن تو مدرسه چند نفری شکولات مفروشن اویم عزونتر از ما چقدر؟ چقدر نشه که نمیدونم فقط این میدونم که همه به چا میرن ازورا شکلات مستونم گرفتنش کاری نداره. اگر این کار بکنی میتونی از امشب تا هر شبی که دلت خواست بیای خانه ما و تلویزیون مفتی تباشه بکنی مشکریم. هم خاطر تریزو نمیگیره. فقط به خودت گل جمال مشکری میگیرم دمت گرم. خوشم رازداد. تو هم یه پاکت برمی‌داری. قربانشون خدا خدا بسم سلام حازم. سلام. حازم، عزیزم شکلات اون کیتافه رسیدم؟ بله. رضاتم ایشتری خوش. علی پاکت به دست توی خیابون را میره. رسیده دم مغازی کفش فروشی ای کرکری مغازی پاینه اکی مردی باشه عکسی نوشته ای چیزی میذاره حاضی شما نمیدین این طرای مغازه بسته؟ دبیرم علی پاکت به دست و رسیده تو حیات خونه دختر بچه میاد از پاکت یه شکولات برمیداره و میره بقیه بچه هایت هم از پاکت شکولات برمیدارن مادر علی میاد پاکت شکلات از علی میگیره چکلاتر از بچه ها پس می گیرد باید باید باید که باید باید کف اتاق چادر نماز مادرشو کشیدی به سرشو دراز کشیده. وی جونیت بسته بود. چرا صلواتش کردی؟ مگه دیگه نمیخوای کفش بخری؟ کفش دیگه میخر. خب الحمدلله که از سر دوفتاد. علی خانم از زیر چادر میاری بیرون. ببینم. هنو نخریده اخیشو؟ اگه اخی میشد یه با شکلات نمیخریدن. ها چی مرگت بود حراجش کردی؟ واسه اینکه ادا کفش تخته بود. مرده‌س؟ تو میتونی از کجا می دونم؟ پسرا گفتی مرده. از عدایت فرای تو ببینم حالا راست رستی مرده نمیدونم نمیدونم از چه رزا گرفتی خب اگه ما را که عدسی خوریه کفا شدیم ایس کبشی کفش حاضی نمیشه توی حیات زیر شیر آب داره زرف میشوده مادر علی میشینه کنار زن چش بود؟ زده بود به سرش از وقتی اسم این کبش ها تو دهنش افتاده است یه روز خوش نداریم آه هر روز داریم. هرچی میکشم از دست این سر معمارس. اونی که این تخمه لقوت و دهن این بچه هم شکوندهست خودشه مادر علی میره در حیات چه ده هی میکنی؟ سر رو میخونم سود میزنم خاطن که علی بیاد دم در نیستش گرفته خونه دمر خوابیده این چه وقت خوابه؟ چه میدونم؟ اوقاتش تلخه میگه چرا کفاشه دکونشو بسته؟ میگه باید از علیه می میگرفته منم همینو میگم اما خیال میکنه کفاش مرده ای حالا را راستی راستی خدا بیاموز مرده وا تو هم کشدی علی مگه آدم حرفکی هم میمیره نه حالا بیدار نمیشه اومده بودم دنبالش برمشخونمون یکمی یک کمکم کنه ها پس هر وقت پای مالی در میونه یا درلی میافتی نه هر وقت کار دار میونه داره در میون من که از پسش بر نیمدم تو بیا برو تو ببینیم چی کام کن. روز بعده علی پاکت شکلات به دست اومده دم به مغازه کفش فروشی خوشحال میره تو زونانی پس شما زنیم نا یه باید باشم خدا نکنه آخی اگه روز مدابیم درد به خاطر همین فکر از حولم یادم سلام کنم. سلام سلام دیوز حالم خوب نبود تو خونه خابیده بودم من به قاطعش ما تپه شده بودم اصلا رو بودم نبودم را. به خاطر من یا به خاطر کفشا دروخت هر دو خیالت از باعت کفشا راحت باشه اگه اتفاقی بیفته سپردم کفشا ماره تو باشه آخه این زریکی به دلم نیمی سسبه همه اشکش به این است که فلاش زیرینگی بدم و کفش بسونم اگه این جوره که میگی با سفت سخت به کار میچ زورم رو که میزنم یه آ یکی ور نتست بر شکست نمیشه. به شرطی که پولش رو بگیر حرفش هم بزنه پس نصف نصف ها پیرمت شکلات رو نصف میکنه او؟ خاجی، حواهداننده باش تسناک. میجران جیره زبونا. مشکریم فراش دم در مدرسه داره داخل کیف بچه‌ها رو وارسی میکنه فرهاد از تو کوچه این صحنه رو میبینه فرهاد حالا تو کوچه منتظر علی ایستاده. علی داره میاد. فرهاد میره طرفش. علی انگوشش رو که چسب زخم دارش پیچیده و فرهاد نشون میده. سلام سلام ممنونم از یه ساعت دم در مدرسه منتظر دم می بینی دم حالا چی چیزی نیست حالا نوشتی؟ تا خورستو برو این کندم می هم اشکالاتم تو مدرسه. بیا خودت گفتی زیاد بخیرم مش زیاده گفتم اما الان وزن اونجوره مشکرم داره از دم کیفا میگرده میگرده دنبالت میگرده دنباله همین که تو کیفده درست همین امروز که از هر روز بیشتر خریده بودم حالا میگی تو کاکونی همش رو بخوریم نقشه شیکمی نکش میگم تو رو اون حیات من از اینجا شکلات پارت بکنم برای تو اون ور بگیر میترسم نتونم بگیرم همش خورد و بشه حس می‌گی استیکا کنی؟ بزنیم پیش یکی از این دکوندارا، بعداً که از مارسی برگشتیم بگیریشون. خیلیام کاسه می‌کونم، ناتوش بندازم. میگم مشکریم با تو میونست توره. چی فیتام نمیگرده. شکلات بزنیم تو کیفی اگه آگه گاش. خب برو. حالا سلام. کجا میری دیگه؟ مشکریم دلم در مشغولی. کی ببین دیگه نکردم که هنوز. اه چه سلام, سلام. سلام شما که خیلید انسان و مدروسه ای بفرمایی فرهاد میره تو؟ علی هم میخواد بره که مشکری محکم نگهش میدونه کیفش باز میکنه اه شکلات توش نیست مادر علی تو حیاط نشسته کنار شیر آب شلنگ سبزی به شیر آب بسته بچه ها از کنارش رد میشن زن همسایه کاسه و استقام به دست میاد طرفش چرا این به میشستی؟ تیاتر آقاست با یه سودشی رو با کن با یه سودشی رو ببن حالا خودش کجاست؟ دامه دره ماشین میشوه پس حالا نمیتونم شیر باز کنم؟ چی میدونم از خودش بپرس علی دامه در مشغول شستن یه ماشین دکتر به چند هست؟ زن همسایه میاد زن میشینه تو سکویی دامه در علی شننگو بر میداری آبو میگیری به ماشین بچه تو که همه جونه تو کردی؟ خب ماشین مگه تو ماشین شوری؟ ایرادی نداره یه درموشت کنده جوان خوش میشه باشیر کار نداری؟ تو وقتی که سود نزده نه. کی سوت می‌زنی؟ میزنی؟ ها کار ماشین تمام شد آه. چند تو کبوتر لبه پشت توی کوچه پر میزنم چند تو کبوتر لبه پشت توی کوچه پر میزنم یه پسر بچی با سرعت به طرفشون میاد و سوت میزنه مادر علی صدای سوتو که میشنوه شیر آبو میبنده حالا این علیه که سوت میزنه حالا این پسر است که سوت میزنه مادر شیر آبو میبنده حالا شیر آبو باز میکنه علی سوت میزنه سر سود میزنه ده همین هوشوش کمالی میکنه سود زاده تو چه کاری لا کاری نمیگم نمیبینم چیزی میبینم بگم ده افت دهم مولا میکنه ده آوادی جان نازا خورده بساری به معنی که نازا شو ال کانسپت گون مادر میاد دم در چه مرگت هی سود میزنی؟ من نمیزنم اون عوضه میذاره که این قرار زمانه علی دعوان نکنی علی با تو علی به سرعت میره طرف پسر بچه شبه توی حیات پدر علی نشسته رو چارپایه و مشکریم قیچی به دست داری موایی اونو کوتاه میکنه اون ها دارن اینا طرف باید بزنی نبکنی خود داده، تقصیر کله خود داده داده، ما مگه همون برو که یه چاربی مر از بین بره، گیر نکنه داده داده. زیاد هزینه کوتاه. کنگ بشه که آلمانیه داده الان مورد که راب نوعی میشه. مشکلی توی رو به هم میکنی؟ جوابش. بیا، پوسته خاص شدی، یه چای تو بخوام. یک چایی بخورم بسه دادم. نگم دو سه بار دیگه بیای اینجایی من سرت کوتاه کنم میتونم بیام و دست خودت همون جاهای که سرمزنی شاگلی کنم خودم هم زیادی هم کریم زمانی که سرزنی شغلیم اونو آب داریم عجب خصیصی هست. هیجور میگی که دست زیاد نشن رو دستت بلند نشن نه با جونی کریم حسد. دارم این درمون درم نزنم درم پولا چندی لکندی بکنم یفتم تو کاری مسافرکش مگم بعد فکریم نستم این روزه دیگه همه مسافرکش شدن طرف مسافر میکشه قیافهش نگاه میکنی میبینی بهش نمیره که مسافرکش باشه ازش سؤال میکنه میبینی بند خدا خالبان بوده حالا مسافر حالا خیر کاری نکرده باشه منش کردیم به بخنده یک جلی زدم شیف کنیم پس هم دیر کریم نه دیگه دست شما درد نکن مش سر شما, کریم. شما درد نکنه مدار شو وقتی تلویزیونی رنگی و برده حیات حسابی قل ورچه قدرت علی سیلی چای رو میبره خودا میدونه رز دستبند قالی این چا سر صام گرفت بله شما راحت رفتن ولی من بیچاره شدم یک نگاه به اتاق من بند جای سوزن انداختن دختر نمره نگاه کن <تصفح> میگم اگه عهد دا و عیال داشتیمش کردیم جو راحت هر شب هر شب بو سرت هبار بشه خودمم فکر رفت پسش بدم اما میبینم اتاقم دوباره سوت برو بشه این چی کارش کنم اگه میخوایی از دستشون خلاص بشی بیلی کو مثل سینگ ما به, به. عجب با هجب فکر کرده چطور به عقل ناقش خودم نرسی ها ها. اما میگم بابا علی یه وقت بد نباشه پول از شو بستانو. چه بدی؟ مالده تازه مصطفی برق داری اتاق جارو پارو داره بس میگم که نفر چند از, از شو بستانو به جای بلید چقدر بگیرم از شو به نظری من بزرگارا دهتو من به چارو پنج دارم بزرگار چاییم مخورنم بابا یه با علی اتاق خودشون نشستن. تو داره که افرکیس رو نمیاری اگر... با... هر شب هر شب که نمیشماره مگه بره اینجا که رای کنه اگه اشبانیسی میشه بدونه مادر ازش خیلی کیف کنم. حالا مادر کیسه رو آورده خالی میکنه روی میز دم دست عوی اینقدر صداشون میگر نیا میگه صداش خوشه دیمیان حالا یه روز میشه این کی سررکوا میکن پول ها به تاق برسه کفش میخوای بخری یا کشتی کشتی کشتییه من میخوا هزار جفت کفش زیجی ا ها بخرم تو بتون همون جفت رو بخر بقیه پیشکشه می خش حالقلبی یا پول بش تو اسکناسابش ما من سکن بچه توی حیات مدرسه در حال ورزش صبحگاهی هستند مشکریم بوی پوست شکلات رو, رو زمین جمع میکنه و میندازه توی یه کیسه پلاستیکی مشکی. مشکیریم و نظیم مدرسی با عجلی از اتاق دفتر میان بیرون. دینا طرف کلاس آلمینا. چرا کزمیه؟ دفتر؟ حتما لو رفتی. شکلات رو کجا گذاشتی؟ تو زمین ز. کار کُن. به جای شکلات رو عوض کن. چه حالتی میشه؟ اقراض رو شا خطه زورا هم که جو سریع کارو کنید من بایدی تو وزن توش کرد من کارت نباشه الان میزنه تو صورت فرما فرما داد بزنی موانمه گرسیش میری طرف فرما که اینو اینجوری کردی؟ آقای دادم درستان من اینجور که کردی بزنی که با خود توشی تو دم دوسم مشکلی میاد طرف بچه‌ها <تتهم> ای وای از بینی فرق کنی چرا ببینم ببینم چی نرمش <ترخش> دسته شده هیچ نه همش می‌کردیم دست یکی بچه خودو تو صورتش آ ما این ور چه چی چیزی دستش خوده علی یواشکی میری تو کلاسشون پاکت شکلات رو از نیمکتشون که ردیف آخر برمی‌دارید مشگریم اون جبه کمک‌های اولیه رو از دفتر بیا بده میره طرف میز فلزی که شودر معلم یکی از کشه رو باز میکنه پوره یک کشه رو میکشیم اونم پوره کشه بعدی جا داره پاکت رو اونجا به سرعت میری طرف در کلاس از کلاس میری بیرون میری طرف بچه ها باید پاکت رو او بالا خونش برد. بیا بریم من من نازم. بذار فیلم بگذارم. بچش چی دونه کردن دیگه؟ که. نازم میرن طرف کلاس علی. اصلا آبی شده که رفته توی اشتباه میکنی اگه با این دو تا چشمه کور شده خودم ندیده بودم. حتماً ما گفتم که اشتواه بکنم ولی چه کنم که یک پاکت به این گندگی پر از شکولت بیدانم کنم بیرلی کردی بعد همون وقت میووردشون دفتر ها دگه همین همیکاره بکنم دگه ولی ترسیدم گفتم بیاد دفتر خاشا بکنه. بگزن زیرش یک سال آبرویم که دارم پیش آقای مدیر برم فکر نمیکن یک کلاس برده باشه بیرون ماله، اصلا با هودا بلبت دور از جون شما با شغ های آقا مثل بود در کلاس می پایدم نگاه می حس بگرد. ممکنه جاش عوض کرد علی و فرها بیرون کلاس منتظر؟ مشکگریم توی کلاس داره کیف بچه ها رو میگرده. اقا نازم نشسته رو صندلی پشتی میز جای اقا معلم و داره دفتر کلاس رو نگاه میکنه. آقا نازم دفتر رو میبنده و تکی میده به صندلی. ی دفعه چشمش میخوره به کشوهای میز در یکی از کشوها رو باز میکنه میره طرف کشوی دیگی که حواسش میره طرف صدایی مشکریم آقا نازم از رو صندلی بلند میشه میره طرف مشکریم نگفتم پیدهش کردی؟ نه بکنم اشتباه کردی این بنده کده ها نون بنیر سبزی کردنه نهار زورشونه یه پیزه سره علی اومده تو مغازه کفش فروشی عجب و روشم گزدی نه گفتی گیر میابدی؟ بچه کردم حاضی نه اون هم چه بچه گی؟ حالا دکنت که؟ از تو پکره ترسیدی؟ نه حاضی بچه جور گمقه بنده خود دارو سوزندم آه مخصوصا که فرهاد به هم گفته بود رفته تو انباری و قر کس رو دیگه بیرون نمیده مرد بود گندگی قر کردی. حیکرش گنده است وگر نه بدسن بدت تره من در خلاه تیزمی خیلی خیده سر قصاش مونده خب تو با این کار پاک خراب خرامتر کردی به خاطر همین با کت شکلات و, و رفتم رو تو انباری علی اومده تو انباری پاکتی شکلات دستشه میره طرف مشکریم که داره یه پنکر رو پاک میکنه کجا بودی؟ تو کلاس کجای کلاس مردستان من تمام کلاس رو زیر رو کردم برچه فرم داره خب آبرون رفت؟ کار کی بودی کار اگه میدونستم مال تو که بند خود همفشم رزن کریم آقا برش دار نه دیگه من که دیگه شکلات نمیفر شما این شکلو گذاشتم کنار خب منم میگه نمیفرشم پس کفشای جدیرک داره چون چه از خیلی کفشا مگذاری با این نرخی که تو شکرسی بند خود دیگه کسی از مشکلیم فکر نکنم شکلات بخوره خو من نفروشم نفروشهم با قامت و میون توای شما راست نه فقط به شرطی که قیمتش بیاری هم فروشت بالا میره هم دخلت میشتمیشه باری کنا راستوسی پاکت شکلات گذاشتی پیشش اومدی بیرون علی با سر میگه به هم رادی به هم ورچی بچه هل کسی دلشون نداره از مالشون راحتی بگذاره کاری نداشت درم برش سوخ از فرش گذشت خوش به سعادت بچه یه اول با خودم کرنجار رفتم از یه ارزه هم نتونستم بگذارم حاضی به بچه بچه تو بتونی بگذاری راست خب حالا با این دست دلوازی میخوای چیکار کار کنی حالا خیلی کار بکن. خدا داره. علی و پسر همسایشون توی کوچه ی آلم بادبادک های رنگی به دیواری آویزون کردن سلام سلام که به درستا برسی این که های تو وزه به برسم اوزهش تو جرمه های من نوم هست اما تو این چی؟ یه زبیشی میبینی که تو اینجا ای وای موتور کیف یه خانم قاف میزنه علی میپره رو ترک موتور و با اون میره دوباره بچه مادر علی اومدن تو کوچه خانم خانم مادر علی به سرعت میره دنبال علی علی کیف به دست خوشحال بر تو کوچه مادرش وسط رو میمونه علی با تحجب به مادرش نگاه میکنه مادر علی رو بغل میکنه و دست میکشه به سرش گفتم دیگه نبینمه زمان که توفهی نیستم باید مادر باشی تا بفهمید دوازه با بنده کیوزه تو سرم که چشان برزه. شب شده علی تو اتاقشونه. میز و دفتر و کتاباش جلو دستشن سلام. اون مشغول درس خوندنه. مادر کیسه به دست میهه طرف علی علی دیگه خوشانی به سکه ها و اسکنس ها نگاه که بیام کونه شدیدی؟ ما بود دوزارون که کازو بود همچین کادونم نبود اتفاً بهش گفته بودن که تو کیفش چی چی داره فقط دو دو کپون روغانه قنده ها شکر نه مادر پولاشو لای آسداری کیفش قایم کرده بود پول داده توی لونه امروزه نگه نه اونقدری که تو فکر میکنی قطعی کفن دفنش که جنازش رو زمین نمونه <تصفح> شیمیکای های اگه بیاد خونه حتما به گوشش میرسه کزا رفته؟ رفته دو کن ببینه کزا؟ نمیاره بشمارمش؟ دارم میگم بیارم بشمارمش دیگه الان نگاه چه قده شده؟ زایده دختر آقا به ناز نازه داده موک شده 18 هزار کاش باشه و پول آقاچ نمی کرد اصلا رازو نیستم که نداده تو از جوند مایه گذاشتی اون از مالش پس رازی بوده آره حالا که اینطوره از عشق کفش که یه هدم رفت کرده من خب لبزن مادر میزو میذاره کنار و علی کلمانت نزنه آفرین مادر میره پشت پنجری ببینید مشکریم و همسایی تو حیات جمع شدن مادر علی با سیلی میزنه به صورت خودش چادر داروش رو میزنه دور کمرش رو خدا به خود یک خود رو چی شده دفتر بچه بیهوش شده و صورتش زخمی و خونیه خواستش مره بچه بند خودش میاد تو قیابون بازی مطوری نامردم به جنگ راش برای میرا رو بچه ای بند خود خیلی خوب چرا بعد حالیم بیمارستان چطوره بیمارستان رو بامونده تا پول ندی که نمخوابونند علی تو اتاق پولارو میرزه تو کیسه یه دفعه قیافه دختر بچه تو کوچه براش تدایه میشه که خندان فرفره به دست داره میدوه علی میاد پشت پنجره به چهری دختر بچه زل میزنه عشق تو چشاش جمع میشه داره را میره و فکر میکنه دمه در اتاق به دیوار تکیه میده مادر علی میاد تو اتاق دنبال چیزی میگرده در صندوقی رو باز میکنه پولاکی نمیشه بچه رو بود بیمارستان حالا ما چی میگردی؟ این چیزی که بفروشمش که بیاد از دست رفته حالا میگی چه پاکی به سرمون بریزی؟ درش نکن برش بیمارستان پولا تو؟ مم. پس کفشات چی؟ همین کفشات سرم کنم بعدا پشیمون نشی برفتی به جونما؟ فقط کسی بونا برای پولا کفشنه روز شده علی کیف دست و همون کفشوی همیشگی داره یواش یواش از تو کوچه رد میشه سرش پایینه و داره به دیوار دست میکشه و راه میره وارد مدرسه میشه پیرمرد فروشنده از دور دیده میشه که پشت سر علیه میاد طرف عدی فیلمات دست میگذید دورشانه علی و راه میفتن میان تو هم باری مدرسه سلام سلام چی شده؟ تو نمیمدی مغازه من اومدم پیشه بگ کردم نمیمیدی بعد از مدرسه خیال داشتم میان پیش همه سیابت میگم. حاطی حالا دیگه میتونی کفش من رو برفروشی اونم کفش های تو رو این چرپیه؟ راستش قسمت نبود پاشون کن فقط خضایتش به واقع مونده چه جانای؟ بیا بریم بریم بود علی که چادر سیاه با مشکری اونجا <مشع> کجا بودی علی جا؟ چرا اومدی مدرسه دلم <Escube> <durability> شور افتاد مشکریم دیشب از بیمارستان که در میاد. همه چیز دستگیریش میشه؟ صبح اول صبح که من داشتم نماز بکندم در خونم صرف شد از من کفشاتو خواهد مشکریم جعبه کفشاتو میگیره دستشو به علی نشون میده کفشاتو گرفتیم اما هر کاری که ریم هجابا پولشه قبول نمردگر مادر با سر و علی اشاره میکنه که به طرف او برن علی و پیرمرد به طرف مادر و مشکری میرن مادر در جعبه کفشو باز میکنه خدا داخلش شده ای با چمبار رو پوشید میشم کفش رو می پای علی علی حالا کفش رو پوشیده خیلی خوشحاله. به کفش نگاه میکنه مبرکت باشه علی جم. علی تو حیات مدرسه پوشیده در کلاس کیف دست کفش رو با پاچه های بحث می‌یندازه ولی همونجوری پشت در کلواز کنار اکه. پنجری اتاق بایی سادیم نصب خود بفر بین زازه نه آخه آقا به خواهد تو با نبود همه رو, رو پیاده اون بینیم 100 بار توضیح دادم بهتون وقتی که دیر می مدرسه مزام کلاس نشین بفر باید. ولی حالا نشسته رو پله های مدرسه بود دفترش رو درآ بود کیفش و گریشت زیر دستش و داره تو دفترش مشک میرییس فرهاد سوار برد دوچرخه میرسه مدرسه. آره. کمی دورتر از کلاس نگه می داره میاد طرف علی. Yeah. چرا اینجا نشستی آقا تو کراس شما مداده نمیمینی آقا مگوستم چی خریده آم. آم. آم. آم. آم. آم. آم. آم. به دستی که مشو نوشت نگاه میکنه. اقا داره اینجا میگه تو پای خ جلوترری از حفس <تصفح> چهخوا نکن تو اسم دن بلد نیستی از حفس و نفسی <تصفح> او موقعی بود. اما حالا از بد ج مااجشب از بهرم یعنی میخواب دیکت ای که اقا داره میگه از حفسی؟ نه همه یک چتاب از حفظ پس هم پسا امتحان دیگه میرسونی؟ نه مفتکی که نیست پول میدن من یه پول نیمیخوام پس چی؟ احلوان برای نبرد با دشمن علی سواری دوچرقهی فرماد میشه و میره و میخواره به در کلاس و میفته تو کلاس برای نبرد سلام. سلام با چرق جای اومده تو کلاسه میگه من مدرسه اخراج آقا به امامتان همه کتابه از حفظه امتحانه میکنم اگه اقلی از بس پانده بود از روز همین بنن میشه معلم داره بعدی دیکته میگه ولی تونتون داره مینویسه فرهاد بیرون کلاس از لایدر به علی و معلم نگاه میکنه معلم دیکته علی رو صحیح میکنه داره بهش نمره میده همین بچه کلاس با کنجکاوی از دور به دست معلم نگاه میکنند می بیست بزرگ می تو دفتر علی و با خوشحالی به اون نگاه میکنه. صورت علی پر از خنده میشه پروات بیرون منتظر ایستاده. علی دو چرخه به دست از کناس میاد بیرون بیا چرخه به شفت حساب. در به دری در خدمت از ازم تو مو یا راسی فرهاد رفتم جلس شگل زرنگا ریلیف او وف پسر مماره دیگه چه بیاد من رسه چه نیاد من رسه آره دیگه علی با خوشحانی کیف و کتاباشو از رو پیل بر و میره تو کلاس و درمون میبر سیزان این برنامه با صدابرداری آقای علی حاجی نوروزی، تایی کنندگی آقای فرشاد آزادنیا، تنظیم و اجرای من شمسی صادقی به شما خوبان تقدیم شد. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.